از خالق کردگار و از رب رحیم، نومید مشو به جرم و عظیم، گرمست و خراب مرد باشی امروز، بردا بخشد بر های رمیم. ای چرخ زگردش تو خرسند نیم، آزادم کن که لایقه بند گر گرمیل تو با بیخرد و نادانه است، من نیز چنان اهل و خردمند نیم. ای مفتی شهر از تو پرکار با این همه مستی از تو ترین، تو خون کسان خوری و ما خونه رزان انصاف بده کدام خونخار ترین آن به که به جام باده دل شاد کنیم و از آمده و گذشته کم یاد کنیم، این آریتی روان زندانی را یک لحظه بند عقل آزاد کنیم.